انسان آباد انسان تخمی است که تشنه آب است یعنی چی؟ یعنی تشنه شیرابه و مغز و جوهر هر چیزی است تشنه حقیقت گیتی است انسان گوهر هاروتی و ماروتی دارد یعنی گوهر خردادی و عمردادی دارد آبادی آرمان فرهنگ ایران به طور کلی در گیتی نیست بلکه انسان خودش می آباد باشد انسان آبادی آرمان انسان در گیتی نیست که گیتی آباد بشود تنها بوم آباد جهان آباد شهر آباد نمیخواهد بلکه بلکه خود انسان هم میخواهد آباد انسان آباد باشد تن و روان و دل هوشش آباد باشد مثلا می میگوید همیشه تن آباد با تاج و تخت ز درد و غم آزاد و پیروز بخت تن آباد یا در مورد دیگر میگوید همیشه دل و هوشش آباد بود روانش زهر درد آزاد بود یا در مورد نوشیروان میگوید دل شاهکسرا پر از داد بود به دانش دل و مغزش آباد بود آباد بودن آرمان و مراد انسان هم هست با انسان آباد است که جهان و اجتماع آباد می شود این یک تشبیه نیست بلکه انسان هم که مردم مر تخم باشد تخمی است که تشنه آب است تشنه چه آبیست مسئله این است انسان با آمیختن با آب <تخلی> وخشا می شود جمشیدی که با شنای در آب رود وحدایتی با شست شدن در اون رود از اون رود میگذرد بهمن اصل خرد و بعد از او پدیدار میشود با گذر و شنایع در آب است که انسان آباد می شود انسان تخمی است از مر یعنی چی؟ از اصل جفتی و امباجی از اصل دوستی یعنی تخمی است که جویا و تشنه آب است تا بروید از این رو به محضی که تخم آب چون که گفتیم زرمایه تخم آب یعنی اصل آب پیدایش میابد اسمش زرمایه بود است به محضی که تخم آب یعنی زرمایه درگیتی پیدایش میابد تشنه این اصل آب است تشنه اصل آب است تشنه اصل آب است. و به دندا می تا در اصل آب در زرمایه شنا و شو خود را شوشو کند. انسان تخم است که گوهرش نهادش فطرتش جویای آب است. تشنه آب است. به آب کشیده می شود تا ببخشد. یکی از نامهای تخم هاگ است که سپس خاک شده است حاق چیز؟ هاگ است خاک در پرهنگ ایران بارونه قرآن بارونه ادبیات و یز الهیات اسلامی یک چیز مرده و پس نیست خاک خاک مرده نیست که خدایی در آن زندگی بدمد خاک حاک تخم یعنی اصل خدا هست این تفاوت این تفاوت تق... معنی خیلی مهم است وقتی در قرآن هم خا... خاک را جای تراب و تین و اینها میگذارند به کلی مسئله فرق کند یعنی فرهنگ ایران وارد قرآن می شود چون که در ذهن ایرانی خاک خاگینه، تخم است خاک حالا این چی شده در معربش چی است؟ حق است حق در آسمان نیست حق در قرآن نیست در کتب و مقدس نیست حق امسان است انسان حق است و این حق است که با ان آب یعنی کشیدن آب پدیدار می شود حقیقت می شود نام دیگر تخم در اوستا چی است خدره خزر است که این خزر ما شده است تخم اسمش خزر بوده است گردها می گویند خدر لیاس این تخم که خزر باشد که شش به سوی آب دارد تشنه و جویای آب است. هر انسانی چنین گوهری و چنین تخمی هست و درست در گرش دیده می شود که سروش که آورنده خانه یا یا خانه آباد هست گوهری می آورد که پیامبره که،, که انسان با داشتن اون گوهر پیامبر خرد می شود. البته سروش مامای زایمان خرد است. دگر گوهری که دهد اندر آب به تاریکی اندر چه خورشید تاب این گوهر را تروش می آورد همونطور که خانه آباد را آورد گفتیم که تخم و آب هم دیگر این گوهر آب را می کشد. تخم و آب هم دیگر را میکشد، کشند می هنجان. هنجیدن که همون از سنگیدن آمده است به معنای به کشیدن است به نیروی جاذبه زور زوری اهنجک در پهلوی گفته می شود. همچنین آخشید که به معنای آلت و ابزار کشیدن است که به این اناتور برای این خاطر آخش... آخشید می گفتن. که از باجه خشه آمده است که هم همون کشه باشد به دین علت به اناسور آخشید یا زهکان میگویند که آن هم به معنای اصل کشیدن است اناسور همه میکشند اصل کشیدن چیزی زیبا و قشنگ هم اخشنگ چنین نیروی کشش دارد اون چه کشش دارد زیبایی اون چیزیست که میکشد واجه قشنگ از این آمده است تخم و آب با هم سنگ از سنگ یعنی جفت و انبازن یعنی اگر هم دور از هم دهستن همدیگر دیگر را میکشند و در این کشش و اگر هم از هم دور باشند، در اثر این کشش همدیگر را جذب میکنند و همدیگر را جویان. این است که در پرهنگ ایران کشش و جستجو دو روی یک چیز پدیدند انسان در جستجو معلق در آسمان نمیماند نباید ترس از دو چوزو داشته باشد چون که ج... اون چیزی که او را میکشد به او خواهد رسید این... ایده رو در پرهنگ ایران خیلی بایستی با دقت فهمید برای این علت است که انسان نباید پیشا پیش حقیقت را داشته باشد و از اینی که در, ش... در جستن جو... معلق در آسمان و آویزان خواهد مان و به هیچگاه به حقیقت نخواهد رسید این یک است که در پرهنگ ایران معنا ندارد چون حقیقت اصل کشش است، حقیقت همون آب است، و خطق همون حق است. هم همدیگر رو میکشن این از که مولوی میگوید ما همچو آب در گل و ریحان روان شویم تا خاک خای تشنه زما بردهد گیاب، بی دست و پاس خاک جگر گرم بهر آب زین رو دوان دوان رود اون آب جوی ها برای این خاطر آب جویها جوی ها چون که می که خاک جگرگرم آب است پستان آب می خلد. ای را یعنی زیرا که دای اوست تفل نبات را طلبد دای جا بجا جا ببینید این دوتا همدیگر را میجوین. این است که خدا و انسان مثل آب و خاک هستن همدیگر را کشش به هم دارن بر پایه قهر و دور بنا نیستن رابطه آنها این است که از بیخ درخت همه تخمه که در میان دریای وروکشا هست که در ترجمه ها می فراخ کرد ولی اصلش فراخ کند است. این است که از بیخ درخت همه تخمه که در میان دریای وروکشا هست بر پرازش مرغ آشیانه دارد سیمرغ این همانی با همون خوشه همه زندگان داشت. خوشه همه زندگان را می گفتن این خوشه خود را در گیتی می افشاند و می پراکند. همه تخما را این اصل جوان دهش است خود را که خوشه از همه جا می زیر این بیخ این درخت بون این درخت هزاران هزار ناب یعنی قنات یعنی کاریز به همه تخمها در روی زمین کشیده می شود یعنی به همه انسانها تا هر کدام از آن تخمها مستقیما این آب دریای سیمرغ را جذب کنند. این آمیختن را آمیختن این آب را با تخمها همپرسی می گفتن. یا آباد شدن همه انسان ها این توخای سیمرخصن همه این قنات این کاریز که اسمش فرهنگ بود به اینها وصل است این است که مولوی میگوید از چشمه جان ره شد در خانه هر مسکین ماننده کاریزی بی تیچه و بی میچن بدونی که کسی تیکه بزند و کرنگ بزند و اینها این کاریست وصل است ببینید فرهنگ ایران ایده واسطه بود امامت و نبوت و امثال اینها را چاچر به فقیه اصلا اینها را نداشته است خدا احتیاجی به واسطه ندارد حقیقت این آبیست که در همه چیز روان است این کاریز را فرهنگ می نامن ببیند مفهوم فرهنگ ما با کلی با ترجمه فرهنگ را که می کلتور، از کلتور کالچر می این فرق دارد ایده ایرانی از فرهنگ فرق داشته از با این ما این مفهوم را فراموش می کنیم یک چیزی میگذاریم که با فرهنگ ایران نمیخواند این دریای محیط که در همه جهان روان است و میتازد همون جد جد یا مینوی ما هست حالا ما اینجا نقطه را دقیقتر تر میکنیم این دریا را که بحث کردیم که این درخت وسطش هست که درخت همه تقن ها باشد همه جان ها این, این, این آب چی هست؟ همون جد و جد است. که مینوی ماه هست که در عبارتبندی دیگر یعنی در یک تصویر دیگری که در بندهش آمد به ش... آمده است به شکل دو رود انباز و جفت و یار در همه جهان میتازد دریا هم نام رود هست مثلا جایهون رو میگفتن دریا دریا در اصل اصلا واجه درای آب است که بعدش سبک شده است شده در به معنای این درای آب به معنای آب آهنگین است آهنگ آ... به موج دریا به موج آب آهنگ می گفتن. یعنی آب مواج است یعنی آب تازنده است یعنی آبی که همیشه تازه می اون دو رود با جفت که دریای محیط است همین دریای بروکش که در پهلوی فراخکند گفته می شود نه فراخ کرد سپس فراخ کرد کردن فراخکند یعنی چی کند در گفتاره های پیش گفتم یعنی نای یا زهدان مثل کلمه قند که اصلش واجه نیشکر بوده است از اینجا آمده است فراخکند مثل آبکند یعنی آبگاه زهدانم آبگاه هست بروکش ها یعنی چی؟ یعنی آبگیر پهناور یعنی زهدان یعنی سرچشمه همه آبها. کشا کسا در سانسکریت خدای آب می باشد یکی از نامهای وارونه که البته کلمه باران ما همین است این خدا اسمش وارونا بوده بارونه در سانسکریت آسمان و محیط بر همه چیز و پادشاه همه آبها و خدای دریا و رودخانه هاست و از نامهای او همین کشاست و نام دیگرش او دامه هست یعنی فراگیر رو احاطه کننده یعنی محیط که که باجه اروند هم که به رود ارنگ گفته می شود همین معنا رو دارد یعنی دریای محیط در سانسکریت حالا این رابطه این باجه کشا که اسم این بارونه هست اسم خدای پادشاه همه آبها خدای دریاها کشایا، کشای در سانتکرید به معنای اتاره و شیرابه به معنای قرمزرنگ و به معنای شیره و سمق یعنی همون جده است و درست نام خوشه پروین یا سریا در فارسی ایری فارون بوده است که یعنی ایری وارونه یعنی بارونه سگانه ایری؟ هیری به معنای ستا یکتاس. یعنی بارونه، یعنی آب، خدای آب، اصل آب سگانه. این باران یا کشا، جد یا کشای خوشه پروین است. که با حلال ما اختران کرده است. درست خود خدای آب یا بارونه این همانی با دریای بروکشا داده می شود. یعنی خدا دریاست دریا این آب تمام این شیره ها این جد مایهی که همه چیز را به هم پیوند میدهد مایه این کشا ورو کشا هست ورو یعنی پر همون کلمه فراخ دریا یا جد و شیرابه جهان خدای محیط و فرقاگیر در همه چیز هاست اون درود با هم جفت و هم نیرو و انباز نیست که ارنگ رود و بهرود باشد همون امرداد و خورداد هست خیلی مهم است برای شناختن فرهنگ ایران باید کاملا اینها را اینکه در نظر داشت اینکه رود وحدایتی یعنی بهرود مایه همه خورسنده هاست این خورسند این خرسند در عوستان می بینیم معنی شناخداری هم دارد از پیشوند خور که همون خور باشد می شود دید که معنای شیرابه دارد شیرابه است که شناخداری و بینش می همین مسئله خرابات و خست که از خور آباد شدن که در ادبیات و ارفان ما العاده تکرار می شود و اشخاص خیال میکنند که با, با پیش ذهنیات اسلامی کاملا اون را محل فحشا و فسخ و فجور میدانند در صورتی که این نوشیدن این آب اصل نوشیدن حقیقت از گیتی بوده است چه در متون بر برجسته ساخته نمیشود همین رابطی و مسعود گذاشته می شود. این رابطی خرداد و مرداد یا دریای فراوخند با بهمن است. این خیلی مهم است. همین رابطه را خورداد و مرداد با بهمن در شکم و جگر دارند خیلی مهم است این متناظر متناظر با هم. خورداد و امرداد در معده در معده انسان از خورش یعنی از خوار در گواریدن آتش برمی و این شیرابه را به جگر که بهمنست است فرستد تا تبدیل به خون بشود در سقدی به خون چی میگن؟ خورن میگن خورنی که خورنی یعنی شیرابه یا اسانس نای که همین دیدیم که این بر به بالا هم همه به همین میکرد در, در سانسکریت این هم مثل فرهنگ ایران به آتش معرفت میگویند آتش معرفت این بهمن آتش معرفت است خون در جگر آتش معرفت است یعنی آتش معرفت یعنی تمیز میان خوبت این اصل است آتش اصل است نه نور معرفت آتش است که نور را می آفریند. این است که در سانسکریت آگنی گیان گیان آگنی می هویند. برای این خاطر است می دانید این خیلی اهمیت دارد که این تصویر ها را ما معنای دقیقش را بفهمیم بهمن که تخم وجود هر انسانی است در هنجش این آب یا یعنی رود وحد آیتی، یعنی خرداد خور خور آبه که شده از چی خرابه که شده از خرابات در هنجش این آب یا جد یا خور از وجود انسان بهمن می روید و پدیدار می شود اون هم با موی گزیمه یعنی فرقدار و جامعی که روشنی هست این شناخت بیجه فرهنگ ایران است شناختی که در تجزیه و, و تحلیل پاره نمی کند از هم دو چیز را که از هم جدا می کند از هم جدا و پاره و ضده هم نمی کند در ترجمه ابستا و گاتا دیده می شود که صفت خورداد رس یا رسا هست که شیرابه و حقیقت جهان هستیست این رس و رس ها هست؟ شیرابه و حقیقت جهان هستی با هنجش با هنجش این رس این رس ها در وجود انسان است که بهمن یعنی روشنی یعنی شراخداری پدیدار میشود. تصویر خرداد در پرهنگ ایران برای ما درست از این اصطلاح رست و رست بسیار برجسته می گردد. این زن خدا یعنی خرداد سرماگه بینش شاد از گیتی بوده است. بینش شاد چیره دنیا را چیره هر چیزی را که خرداد باشد مکیدن یا نوشیدن سبب چی پیدا می شود؟ چون که این اصل شادی و عشق و همه چیز هست این بینش شاد از آن پیداش میبود حقیقت و شادی و خوشی و مه با هم در او یعنی در خرداد جدا ناپذیرن. و همین دو چهره علت ناتادگاری چنین بینشی به شاخداری شناخداری هم با آموزه زردوشت هم با شریعت اسلام بوده است. و همین زن خدا هست که هارود و خواهرش که امارداد است مارود شده است. که در اسلام فرشته مطرود و مرتد میگردن در سانسکریت معنای رس و رس ها باقی مانده است و دارای این معانی هست رس و رس که سپت خرداد یا گوهر خرداد هست این هست یکی زبان یکی اندام مزیدن امرداد و خداد خدایان مزیدن در زبان و دهانن در پرهنگی دا. یکی معنی رست ها چاشنی و ابزار یا مزه است معنای دیگر رست ها احساس کردن درک کردن حساس بودن است معنای دیگر مهر ورزیدن است معنای دیگر شیراوی نیشکر است ببینید رس نواد رس نواد خدای رشل یعنی شیره نی همه نوشابه ها اکسیر شیرابه همه گیاهان مغز و جوهر و هسته هر چیزی بهترین و لطیفترین بخش هر چیزی خوشی و شادی اشتیاق فراوان انگور زبان اینها همه معانی رس و رس ها یا گوهر خورداد و مرداد هستند این دو خدا فراموش نباید بکنیم اوج آمال ایرانی، ایرانیان بوده اینها اصل خوشکیستی و دیرزیستی و امید و سعادت هستند. ولی در ایران و در ایران به پاییز برای خاطر اینکه بهتر این رس را بفهمیم در ایران به پاییز رسپینا میگفتند رس که این رس وینا بوده است رس یعنی شیره و انگ... ابشرهی انگور وینا وی... یعنی انگور رس یعنی شیره حالا چرا برای خود این رسنواد خیلی رچنه چون پاییز فصل چرخشت است و انداختن شیره انگور در خوم و نوشیدن شراب خام بود و خدای چرخش که است؟ رشن رست نواد این بعدش این جشن در دوره زردوشتی ها نادی کم کم از چیز رونق انداخته شده است. مثل چی اگری که در ایران جشن های ایران را همرایه کی بعد از دیگری از بین برده است وای هیجده شهری بر که روز رشن است چرخشت آغاز می و جشن بسیار بزرگی در ایران بود و مهرگان جشن های دیگر چرخشت و مینوشی بودند. رشن و خورداد و ماه و خرم و بهمن این پنج تا خدا رشن خرداد ماه خرم و خدایان باده بودن خیلی مهم است خدایان باده رشن و خرداد و ماه و خرم و بهمن بودن از این رونیز بود که رشن به علت اینکه خدای انگور فشاری بود اصل راستی و داوری و دارنده ترازه بود کسی که شیره انگور را می کشد چیره چیزها را می کشد جوهر چیزها را بیرون می آورد این خدای راستیست. اصل راستیست. راستی اصل راستی است حقیقت این است که جوهر چیزها حقیقت در آسمان و پهلو خدا فراسوی گویتی نیست یک هنچه خدای ایرانی نداشته خدا جوهر همین شیره دنیا بود است اصل این است که اپشوردن این شیره رشم بود خدای خوش بوده برای خاطر است که اصل راستی است برای همه خاطر است که زردوشتی ها با رشن درد سر داشتن نامه باده یکی از نامه های باده بگمز است بق مز یعنی ما خدا یعنی باده ما خداست خور رم یعنی باده رم یعنی شیراب ببینید باده نوشین این است که لحنی را که باربود ساخته است برای خورم باده نوشین است اسمش باده نوش و انجمن و بزم بهمنی بزم رایزنی با نوشیدن باده بوده است مجلس شور بایستی در مجلس شور باید باده نوشید بهمن اصل بزم است یعنی اصل اندیشیدن در انجمن است و رز که تاک و انگور باشد همین رس است و نام دیگر خرداد نزد مردم مد بوده است البته مد یعنی اوج شادی هست. یعنی سرشاری از شادی و این, این واژه در فارسی شده است مستی که بیان اوج شادی در بین چیست؟ که از نوشیدن جوهر چیزها پدیدار می شود ببینید مستی چه معنای جرپی داشته است نام خرابادو که خراباد شده است و مستی در ادبیات ایران به عرفان به همین زن خدا خرداد باز, باز می کرده. که خوب دیده می شود که از سوی با شیرابه همه گیاهان و مغز و جوهر حست و هستی چیزها در گیتی و نیروی اکسیری اینها و اصول دیگر چی با خوشی و شادی و مهر و عشق و مزیدن که اصل معرفت از کار دارد این دو چیز دو روی یک سکه هستند در خرداد چنین خدایی که مغز و جوهر و هستی شاد گیتی هست در نوشیدن در مزیدن در شنا کردن در آن در شست و شو کردن خود با آن انسان را مست از شادی و حقیقت و مهر و معرفت میکنه این اندیشه همون چیزی است که ما امروزه به صورت خیلی سطحی در سکولاریسم می جوییم. این است که ما گنج زیر پایمان هست میرویم گدایی میکنیم این دو زن خدای ایران که پیکریابی انبازی سعادت و معرفت با هم در گیتی بودند آرمان فرهنگ ایرانی از زندگی در گیتی بود و ولی زردوش کوشید که به این آرمان فرهنگ ایران اجدانا پجگیری سعادت و معرفت در نوشیدن شیره گیتی راستا و سوی روحانی و آسمانی و فراگیتی به او بدهد چون که برای زردوش اهورامزدا مزدا سوی گیتی گذران روشنی بیکران بود این دو ایده با هم نمی ساختن. ولی این تلاش دوچار تنش و کشمکش های فراوان در دوره ساسانی شد چون یزدان شناسی زردوشتی از عهده آن بر نیامد که این تمام بیجیگه های خرداد را با اون روشنی بیکران احور آمزا بتواند با هم پیبند داد است که یشت خرداد اینقدر اصلاح شده است که تقریبا در عبستا از و خورده چیزی باقی نمانده است غیر از یک, جوش، یک مشت ناچیز از واجه هایی که با شناسی زردشتی خیلی سطحی چیز سازگاری دارد از سوی جامعه ایرانی پایبند همان آرمان اصلی خرداد و مرداد که جدا نفی زیری سعادت از معرفت در گیتی باشد باقی من ملت ایران به این در این پایدار ماند این است که یزدان شناسی داشتید ناتوان از آن بود که از خرداد و مرداد های کاملا روحانی و آسمانی و ماوراتبی بسازد ولی تا توانست از گیتایی بودن خرداد و مرداد کاست و تا میتوانست به شکل‌های دیگر آنها را زشت کرد که این بحثی است که من در جای دیگر خواهم کرد ولی از سوی دیگر این آل زندگی که زندگی سکولار بود و استوار بر خرد شاد و بینش زاده از شناخت گیتی و پدیده خود گیتی بود در اندیشه ها و آین های مربوط به روز خورداد باقی ماند. یک اثری در پهلوی باقی مانده است به نام ماه فروردین روز خورداد در این اثر میتوان به خوبی این آرمان بزرگ فرهنگ ایران را که زایش معرفت شاد از شناخت مستقیم انسان از طبیعت و گیدی باشد هنوز در آن یافت همه کارهای بزرگ مدنیت و فرهنگ ایران در این روز و با ترکیب و با این خدا که جد و رس و خرآبه و شیرابه آبه روی میدن همه اتفاقات بزرگ و یا روی خواهد داد به عبارت دیگر با نوشیدن و شناکردن در این خوراوه در این رس در این کیدابه که قیدافه شده است در این جد جد گیتی خوراوه گیتی کچی که معرفتی پیدایش میابد که سعادت را پایه میگذارد این ایده نه با زردوشتیگری میساخت نه با اسلام درست در این روز خرداد در ماه پروردین که روز ششم است و نوروز بزرگ خوانده می شود اوج جشن نوروز روز ششم بوده است نه برای خاطر اینکه تولد زرتشت است که بعدان زرتشتی ها به این روز نمی که به این روز نسبت دادن بلکه برای خاطر اینی که این زن خدا شیرابهی دنیات و نوشیدن از آن سعادت و مهرو و شادی ایجاد میکنه. حالا در همین نامه که ماه پروردین روز خورداد ما آتار این رو میبینیم در این روز نخستین انسان و مهری و مهریانه و هوشنگ که بهمن باشد در گیتی پدیدار میشود که معید همون اندیشه گذیده های زادسپرم است که با گذشتن عبور زردشت از رود بهمن تذیدار میشد در این روز فریدون کیهان را پخش می کند یعنی چی به عبارت دیگر داد جهانی را تاصیت میکنه یعنی داد جهانی بینشید که از نوشیدن این خورآوه از این خرابات یعنی انسان خراباتی شده است فریدون با چنین بینشی که داد و جهانی را داشت. بالاخره زردوشتی ها نیست چون که گفتن روز زایش زردشت رو به همین روز نسبت دادن. برای چی بارونه کنند؟ یعنی خورداد اصل این نبوده است بلکه زردشت اصل بوده است. در همین روز زردشت با اهورا مزدا هم پرسی میکنه. یعنی چی؟ یعنی معرفت زردشت از نوشیدن همین خرداد خورا این خوراوه ایجاد شده است ولی اونها در همپرسی با اهورامزدا این را یک میچرخانند یعنی از اهورا این البته اهورامزدا به معنای حق آمنشی درست خودش است که تبدیل به خرداد و امرداد میشود حالا ولی این همپرسی مهم است همپرسی یعنی آمیختن این گفتگو نیست که من با دیگری از دور با هم گفتگو کنیم بلکه آمیختن است در تمام گذیده های زادست به خوبی میشه و دید که هم آمیختن است در این روز حالا در آینده که بهرام و در آینده خواهد در این روز است که در آینده سام اجزه یعنی ضد زندگی را خواهد کشت در این روز است که در جهان رستاخیز خواهد شد و کیهان بی مرگ و بی می مخواهم خوب نگاه کنید از این خرداد از این نوشیدن این شیره و جوهر هر چیزی چه چیزها ایجاد می شود این اصل همه چیزها اهمیت خورداد که شیرابه و خرابه و رس گیتی هست و از نوشیدن آن یا شنا کردن در آن معرفت و شادی و سعادت می روید بنیاد فرهنگ سیاسی ایران بود مثلا در شاهنامه درست فریدون در این روز است که بر ضد زهاک برمیخیزد برون ربت خرم به خرداد روز به نیکختر و فال گیتی روز درست در همین روز فریدون بر ضد زهاک قیام کند یعنی روزی است که در این روز چونکه روز اصل زندگی و حقیقت است در این روز است که باید بر ذات عجیق قیام کرد سام هم در این روز است که را میکشد معمولا کوشیده می شود که تاجگذاری ها در این روز صورت بگیرد چون که تاجگذاری هرمت پسر افنه و در همین روز است به ماه خجسته به خرداد روز به نیکختر و فال گیتی فروز نهادیم بر سر تو را تاج زر چنان هم که ما یافتیم از پدر یا مثلا شاه لشکر را برای جنگ با خاقان چین در همین روز میفرستد برفت از بره گیتی فروت به فرخوندفار و به خرداد روز به خاقان چنین آگهی شد که شاه فرستاد مهران مهران ستاد و سپاه خوب دیده می شود که این چه اهمیتی این شیره گیتی که, پی کریا... که خرداد خورا... پیکریابی آنه در پرهنگ ایران داشته است نوشیدن این خرابه بوده است که اصل حقیقت و شادی و سعادت بوده